ماشین هایی کشت، بردگان زمین آمده تا دنیا را مسخر پیش کنند. آنان با آلت کشت خود آمده تا جهان را مالک شوند آیا تاکنین و پیش از تولید مثق خود فکر کردند؟ خواندند دانستند؟ سوک از این نظم چرخش می بیاد. مقاله سوک، کتاب کیمیا اثر نیمان برای دسترسی به آثار صوتی نیما سواری می توانید از وبسایت جهان آرمانی، کانال تلگرام، کانال یوتیوب، اپل پادکست، اسپاتیفای و دیگر برنامه‌های پادکست استفاده کنید.